رقابت بین این ها بسیار بسیار جدی شده گرفته و اینا دعوا دارن امروز نه فردا قران خیلی زیبا میفرما تو سوره جمعه میگه اگه مردید آرزو مرگ کنید اگه شما واقعا دوست دار خودتون دو بفهمید که خود دوستتون داره زعنتوم انکم اولیاء اول الله و تمنوا الموت آرزو مرگ کنید مرگ هم راه فرار نداره این آدم 89 سال 90 سالشه امروز نه حالا بگیم اینم شایعه یعنی اصلا ممکن ممکن اصلا تو دل همین شایعات بخون اینا ذهن مردم آماده کنن ها هی بگن مرده حیرت میکنن چون خودشون فهمیدن آمریکایی‌ها می‌خوام بندر بن بین بیان سر سرکار حتی بنده پیش میکنن که اینا قطعا میدونن که انقلاب میشه تو عربستان مردم حقوق خودشونو میخوان. حتی بیان از خیر حکومت سلطنتی هم چیکوکنم بگیذارم جامعه عربستان که قبلا بستنی یه دو ششیه، یوی بهذبیگان حق رهایی بیا مدرسه شرکت کن، رئیس جمهور بکنن که من در بند سلطان بکنم. یکی مثل که مثل مصر، یه حسی مبارکه مصر رئیس جمهور بوده داره مردم رای میده در. بیارم سر کار تا چهل سال بازور عربستان رو چی داشته باشن. یعنی من کیش بینیم اینه، اونها وقتی اونا یه جا احساس خطر دارن میکنن به این سمت میرن که مدیریت کن جریانه. تا عربستان بیداری استران به اونجا کشیده خواهد شد. و این انقلاب اونجا کشیده خواهد شد اینها برنامه‌شون اینه که بخوان اینا مدیریت کنن از طریق بندر بن سلطان نسل دومی الان کسایی که مدعین احمد ابن عبدالعزیز وزیری کشور مقرن امیر مقرن سازمان اطلاعات امنیت دستشه ستامت عبد عبدالعزیز حاکم ریاضه. نسل سومی ها خالد ابن سلطانه محمد ابن نایفه متعب ابن عبداللهه الله و همین بندر ابن سلطانه خب اینها الان هر کدوم خودشونو تو قداغوار پادشاهی تو عربستان میبینن اگر امریکا بتونه پادشاهی نگه، داره که پادشاهی نگه می داره، تمایلش بر اینه. ببینه نمیتونه تمایل داره که یک با دادن تای دموکراسی به مردم، بندربین سلطان رو بیاره سر کار و اینها رو در واقع اونطور دوست داره نگه داره. اما بگم بفهم. شما تام خواستم گیدن. شماست شما بفهم. شما از ترکیه رو شما چه برقراری چون ترکیه هم یه بازی موذیانه توی منطقه داره. نقش ترکیه رو که تا حالا اولا, اولا یه زمانی بود متاسفانه وقتی این اردوغان به شیمون پرز پرید اون کنفرانس خبری در دوست سوئیس بودیش تا نکنم می گفت وان مینیتس وان مینیتس بذید دیگه صحبت کنم مثلا شما کشنده قاتل کودکان هستین حرفا اون موقع خیلی مود شده بودین تو دانشیو فکس میفرستدم به سفارت ترکیه تشکر من خاطره هست اون موقع دانشجو شاهرو بودم یعنی تو شاهرودم که زمان دانشجو باشم امروز کار هی میگفتم این کار نکنید این بازیه اینا میخوان علم مبارزه با صهیونیسم از ایران میخوان بدل جمهوری احسن میخوان بگیرن بازی نخورید کسی هم حرف ما گوش. آقا تو منفی نگاه می‌کنی فلان و آخر هم همون شد خب اربکان مرحوم اربکان خدا بیامرز ایشون ایران هم اومده این رهبر ها بود اینا هم ادامه می‌دن اسلامگیران دیگه زمانی که اینو به قدرت رسیدن چه برنامه زنده تلویزیونی قاعدتاً با تو جاگ‌های مجازی تو اینترنت باشین فیلمش این موزیک بعدش باهای اربکان گفتش که آره آی اربکان این نزدیک به هم بود اربکان گفتش که آره اربکان شما بالاخره خودت نتونیسی اما شاگردات تونستان اسلام گرایا به قدرت برسن آره اربکان فهمید این دوتا تا رو میگی که هر دو تا اینا اصلا برنامه زنده هر مپوت میندن که این چه صحبته اینا میشناختشون اینا رو اینا بازیشون بود اصلا اینا هر دو تاشون ش... مشکوکن یه سری محافل اونا شرکت میکنن احتماله که جزء خدمت شما از اونام تشکیلات فراماسونی در ترکیه هم باشن خود پجوشگرای ترکیه یه سری مقالات مقالاتو زدن گذاشتن حالا هم کار ندارم عملکرد اینا اون تشکیلاتو عملکرد اینا نشون نمیستی دارن عمل میکنن اینها با پوز اسلامگرایی گرایی اومدن همسرشون حجاب داشتن یعنی همون بدل سازی برای جمهوری اسلام غرب متوجین تحرکات تو منطقه شده بود میگفت امروز نه فردایی بیداری اسلامی چه این دیگه بخار میترکی بالاخره وقتی مردم مصر اسم خورمه های دارن خورمه های درجه پایین ب... به درنخورش میذارن بوش و فلان و خورمه های خوب نصر نسر الله احمدی نجاد خالد مشعل کسی که مبارزه, و سعی... مبارزه, و سعی... مبارزه و وقتی سه نفر در جهان اسلام محبوب ترین ها هستند و هر سه نفر ویژگیشون مبارزه با اسرائیل این کود نداره برقر خیلی معنی داره براشون دیگه اینا مجبور هدن به درستازگان ترکیه مدل سکولار جریانه خدمت شما ارز کنم سلفی ها مدل این طرفی یعنی بگویر از این بر جوب افتادن آره. میخواد آرهی میخواد بگی آقا ببینید تو اگه دینی میخوای بیانی سلفی ها اگر غیر دینی میخوا یعنی سکولار باشه لایک باشه بیا سرو ترکیه سرو جمهوری اسلامی نرو بیا ببین اینم داره بسره فوش میده این ترکیه تو روایت آخر زمان هم بحث داره مشترک اینا اصلا تو روایت اخر زمانه سو ترک ها رو دارن میگه ترک ها نه بن من نژاد رو نه هم منطقه روشون میکنه میگه اینا دعواشون میشه و اینا حمایت های میکنن سفیانی خب حالا این بحث اخر زمانه شما اصلا موزه برنامه همینه این ما اصلا روایتشام داریم خب ببینید منی توی, شام... این... توی شامات داستان اینجوریه که من ترمیزلم زیاده یکی دو تا نیست اگه کتاب اسرار زهور آیه کورانی رو بخونن دوستان که پی دی هم تو اینترنت هست ترجمه فارسیش پی دی تو اینترنت هست میتونم دانلود کنم نگاه کنم به خونه تو دو نه دو کردم احادیث شامات احادیث ایران یعنی ایران در اسرار زهور شامات در اسرار زهور ترکیه هم داره خب مجبوره واتش مفصله خدمت شما عرض می‌کنم اما اینجا خود شما. این شما به هم می‌ریزه. اولن شما به هم می‌خدارید زمان زوره نخیر. این یکی اول جواب بدیم آوا پاکی برزین بود دستشون. اما حالا ببینیم چی میگه. این یکی ببینید اونجا چند تا پرچم علم میشه. اینها با هم نبرد میکنن. اب از اصحاب سفیانی. حالا بخی سر میگن اب قعه تو مصر فلان با اوناش کار ندارم. من چیز کلی دارم عرض می‌کنم. اینها با مسوات خوب و شیعه ندارن ها. اما با هم مشکل دارن. سفیانی که پرچمش قرمزه سیاه. نه ابقاع سیاه, سف... سیاه و سفید اصحاب سرخ و سفید سفیانی قرمزه نیست قرمزه‌ سیاه و سفید اصحاب سرخ و سفید و سفیانی قرمز که میگن پرچم ابوسفیان رو زنده میکنه خب و یزیدی‌ها هم اصلا سرخ لباساشون پرچمشه اینها میان خدمت شما هستن اینا رو شکست بده سفیانی تصویر میگیره به سمت عراق بیاد در میاد در سر راه رودخانه فرات گنجی رو در منطقه قرغیسی آشکار میکنه منطقه قرغیس کجاست؟ جنوب ترکیه، محل تلاقی مرزهای سوریه، ترکیه و این گنجی حالا میتونه منابع نفت باشه، نمیدونم چیه، بالاخره که روایت گنجی. یعنی چیزی که میصرفه صرفی باشه. همین الان ترکیه یکی از برنامه‌هایی که داره که بعد از اینکه سوریه تجزیه کرد، اون منابع شمال شرقه سوریه رو مصادره کنه. یعنی به نفع خودش بگیره. یکی از برنامه های اصلی یا ترکیه با کوردهای عراقی برنامه رو بسته که اگر شما اون منابعه نفتیه بتونید شمال اربیل و کرکو کل حالا حتماً کوردنشینی نیست، ترک هم داره. اصلا کرکو ترک نشینه. بتونید مثلا نفتشو برسونید به ما، ما هم اجازه میدیم که شما اون نقشه‌ای که دارید و بیاید با همکاری همدیگه دیگه کوردها همیشه کوردها تون کشور بزرگی خودشون رو می‌بینن. همیشه این دغدغه داشتن که بین اقیانوسی از غیر کوردها در حال جزیره ای اند، اوقیانوسشون گیریم بعد به دریا راه نداره. یا می‌واد سمت خلیج که کرد نداره. یا باید برسنن خوششون به دریای سیاه که کرد نداره، یا برسنن به دریای مدیترانه. که بعد چیکار بکنن؟ از سوریه بگذرن اینها الان اومدن برشون اینجوری دون پاشیدن. به کردها هم دارن میگن که شما هم بیاید. الان یه جبهه اونها درست کن تو سوریه. کردها هم الان جبهه درست کردن. بخمون دارن می‌جنگن با نظ... با... نظام اسد خب حکومت بشار اسد دارن میجنگن اونم متاسفانه البته بازی اینا خودشون با هم درگیری دارن ها هم خیلی زیاده اینا میگن بیاید از شمال برید خودتون برسید به دریه تنیه یعنی منطقه شمال علوی که میشینن برید اونجا رو بگید خودتون از اون طرف برسید ترکیه همچه پوانی داده در عوض نفت میخواد ممکنه واقعا هم مثلا همچین چیز باشه میتواند خب در اونجا اون... اون نبردی که معصوم فرموده دخالت نکنید اصلا نورد صفیانی با در منطقه قرقیسیوس هیچ ربطی نداشته به این برد یا میگم همینش تا رویهیش درست نبوده متاسفانه بعد نوردی میشین و همدیگه رو میکشن انقدر جنازه میریزه که پرنده های آسمان و وحوش صحرا میان اینقد نمیخورن سیر میشن بعد میاد به سمت عراق میاد به سمت عراق فتنه میکشه به کوفه میرسه تو کوفه خیلی کشدار میکنه اینجاست که سپاه ایران خارج از مرزهای خودش میره برای خوش‌تفهم میکنه این سپاه خراسانی میاد صوفیانی رو شکست میده یعنی سپاه صوفیانی رو پس میزنه او متمرکز میشه منطقه مدینه میگه برم عربستان رو میگه. میاد میرم مدینه رو میگیره در مدینه هم خوندیزی میکنه باز روایت رو تفاوته من اون چیزی که بیشتر جا افتادست دارم عرض میکنم قول مشغور رو دارم میگم میره تو مدینه از مدینه تصمیم میگیرم بیانم به سمت مکه اون خصم در بیدا که از نشانه های قطعی زهوره پنج نشانه اصلی و قطعی زهوره یکیشم اینه واقع میشه و هفتاد هزار نفر در رانش زمین در اون خصمی که صورت میگیره از بین میرن در اسنای همین جریانی که آقا صاحب زمان در مکه در حجاز در مکه در کنار خانه کعبه تکی بخونه که حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام صنم المنتقم رو فریاد میزنه و ایرانی ها در این سپاه معاونت نظامی با ایرانی هاست و بسیاری از معاونت های آقا ساویدانی یاران آقا ساویدان 313 نفر حتی نام برده شده به شهر های اینها حتی میبینیم نقش ایرانی ها در آن هستش خب روایتی است که سال های پیش از اهل بیت نقل شده رسیده 1400 سال پیش خب ببینید اما حالا ببینید روایت بررسی کنیم با ایران امروز ایران ایرانی که علم مقاومت دستشه شیعه خانه امام زمانه آیا این غیر منطقی که معاونت امام زمان از اینجا باشه نخیر خیلی خیل منطقیه اما فرض که ایرانی علمو بگذار زمین. بگو من نمیخوام آقا بریم با آمریکا ببندیم. مثل لیبی چی شد قذافی؟ چی شد قذافی؟ من واقعا نمیدونم کسی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن قذافی ها و صدام ها رو ندیدن. واقعا اینو فکر میکنن مثلا مذاکره با آمریکا خطر نظامی رو مثلا کاهش میده. اینو واقعا فکر میکنن آمریکا اگر بتونه حمله بکنه، و حمله نمیکنه. یه بهانه درست میکنه همین امروز درست می‌کنه فردا حمله میکنه خودش خودشه میزنه مثل 11 سپتامبر میگه ایران زد گفت آقا القاعده زد چهجوری بی اثبات کن اصلا میدونی که چیزی که وجود نداره که نمیشه اثباتش کرد خوب آقا بزنی که از سفیر خوش بکشه بگه آقا مثلا نیروهای سپاه پاسداران در خارج از مرزان نیروی قدس سف. سف. سفیر مار کشته چی می‌خوای کن به عراق حمله کرد بدون اجازه سازمان ملل به بهانه سلای کشته راجم شما پیدا کردیم پس نمیتونه به جمهوری اسلام هند کنه این همش بلوفه میخواد ما از داخل بپوشیم مگه 130 تا نماینده 220 تا نماینده نما به رهبری که آقا کتابی بیا تام جام زهر بخور ای امروز اومده عراق زده فردا ما رو میزنه رهبری با مقاومتی که داشت کوتا نیومد کجا میکه کار رو 2003 بود نه 2013 10 سال گذشته کجا آمریکا رو زده پراس عراق افتاد دست ما ببین الان ما داریم با امروز مرزهای جمهوری اسلامی تو سودانه تو مصره امروز باید نگران ایران تو مصر باشه نگران ایران توی سوریه باشه نگران ایران توی تونس باشه نگران ایران تو عربستان باشه این همه دارن سلاح به میفروشن چه تزمینی میکنی؟ این همه سلاح به حسین مبارک دادن درست یا نه الان اگه همین الان دولت یه خورده جنبه بیشتری داشته باشه بگرده این همه سلاح در دست دشمنان اسرائیل این همه عربستان داره سلاح می‌خره شما چه تضمینی میدید که تا سه سال دیگه یه حکومت اینجا سرکار نیاد که سلاحاش علیه اسرائیل استفاده نکن کار خدا رو کی می‌تونه خدا برعکس خودمونی بگم خیلی از بیننده های شما جوانن دیگه با با کل کل خدا اهل نباد به خود کری بخونی نبات به خود کلکل کنید فرعون هم میگه انا ربکم الاعلى من خدای بزرگی شما خدا چیکارش کرد حضرت موسی را کجا بیرون کشید کل برنی اسرائیل یه پسر زنده نگرد همون پسر هم خودش بزرگ کرد خرج تحصیلش رو داد خرج خورد برای داد، همونش رو قاتلش درسته انقلاب 1979 از دل کشوری بیرون آمد علیه اسرائیل که دوست داریم کشور اسرائیل در منطقه ایران امروز وزر خود میگه ما رو نمیکردیم ایران یه روزی دشمن ما باشه حالا هی مستند می سازن بی بی سی می سازن یه درست مصنعت می‌سازن، BBC نمی‌سازه برای یهودی‌هایی که توی اسرائیل هستند آقا آه ما یوزی با همدوس بودیم این از ما شروع کرد از خشایش رو شروع می‌کنم می‌گن چی شد آقا خشایش رو منجر شد به احمدی نژاد آه می‌گن چی شد این اتفاق افتاده نمیدونم فلان مه احمدی نژاد اما یکی از پرندگان دست دهم ده امام قزل نگه داشت امام قزل اسرائیل نباید باشه سفر بروزگار بعد مخف بیشه نمی‌خوایم احمدی نژاد اول کسی است که سال بود. آقای احمدی نژاد یه بخش این هولوکاست آیه بوده اساسا شما اگه بر مبنای هولوکاست اومدید اینجا اون غلطه همچین چیزی نداریم خب ایشون بیرام نگفت هولوکاست اثبات نشده اصلا تمام م... تاریخ‌گردان‌ها نسبت به شک دارن یعنی اینجوری نیست که اینا انقدر شیش بینون گفتن که مزخرف شیش بینون کشته خب امام گفت اصلا هر مسلمان یه سفط آب بریزه با جمعیت اون موقع مسلمان‌ها امروز که بخاصه عزم خواست منظرش آب دهان مسلمان‌ها بنظرین تا تماماً اوزای منطقه رو من به سود جبهه مقاومت میبینم و شکل گیری جبهه مقاومت یعنی ظهور. این مهمه شکل گیری جبهه مقاومت یعنی زبور یعنی یک کسایی که آقا تو نیستی جلو هم بکاست روی این جوایی میستیم این کد میدی به خدا ما داریم آزمون جهاد میدیم آزمون نه و نترسیدن، تو تحریم اقتصادی میگه ما رو از تحریم اقتصادی نترسانید ما فرزندان رمضانییم ما رو از کشته شدن نترسانیم ما فرزندان آشوره ما اصلا خودمون گشتنگی میکشیم مانور داریم میدیم تو مانور مگه تیر ترقه دارن میکنن چرا ادای جنگو در میرن برای اینکه برای جنگ آماده بشن اصلا ما تو مراسم خودمون گشتنگی میکشیم برای گشتنگی آماده بشیم که اصلا هیچ گشتنگی تو ایران نداریم ما الحمدلله این لطف خداست برکت میده جایی که صبح تا شب نو ابا عبدالله داره برده میشه دیواییه تحلیل این کشور و جاریه گرسنگی سراغ این کشور نه ما تو کشور مدیریت نداریم این اینا درست برسونیم اون کجا ورزه زمین از کیلو تومان 500 تومان میشه این طرف هم مثلا توی بقالی کیلو دو هزار تومان میفروشن مدیریت متاسفانه خود ضعیفه مدیریت توضیح نداریم و به هرگز این طور ما بعضی میگن اون شهر و جوکه سه یا شش سنگ به شکم می‌بستیم که گرسنه موند، گرسنگی رو کم تا کنیم. ما اینقدر نداریم تورا. ما اصلا گرسنگی مطلق رو نداری تورا. سه سال اون زحمت‌ها و سختی‌ها رو کشیدن. اهل بیت توشه و ابی طالب بودن. ما نداریم اصلا یه خورده بله تحریم اثر تو دو نمی‌گم نمیگم من بگیم دروغ گفتیم. بخود بی‌انصافیه و, و دور از واقع صحبت کردنه. بیننده هم و مخاطب هم نمیپذیره. اما بخش اون هم به خاطر سوء مدیریته. های دلالی که شکل گرفته تو کشور و و باید, باید با اینا برخورد بشه اینا اینا اینا برنامه ظهوره تقویت جمهوری اسلامی به عنوان پایگاهه ببینید تقویت جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه انقلاب اسلامی از های زوره. من اینا را شرط زور میدونم ما یه انقلاب اسلامی داریم یه جمهوری اسلامی اینا با هم تفاوت داره ممکنه چیزی برای جمهوری اسلامی بد باشه و برای انقلاب اسلامی خوب باشه. ممکنه بر هردو خوب باشه ممکنه بر هردو هم بد باشه مثلا بحثن با آمریکا بر اردو دو بده به نظر من آقا جنگ برای جمهوری اسلامی بد بود هزینه داشت بر انقلاب اسلامی چه بود خوب بود مفید بود ما اینو باید بتون تفهیم کنیم جمهوری اسلامی ما قائل بر تقویتش هستیم چرا چون پایگاه انقلاب اسلامی یعنی ما انقلاب اسلامی برای اون مهمه انقلاب مگه ما انقلاب که شاها دیگر. ما شاه بیرون دیگه و چی شد هنوزم میگیم انقلاب که هنوز میگیم رهبر انقلاب که هنوز میگیم انقلاب اسلامی یعنی صدور انقلاب برای اینکه انقلابو کی تموم میشه وقت ظهور خب یا همه عالم بگیریم یا. آره. ما داستان اینه این تفاوت بر برقی از مسئولین خود ما تو کشورمون حل نشده به خاطر همین بیان پرگمتیستی نگاه میکنند یعنی به فکر میکنی آه منافع ملی. منافع ملی اگر به ذره انقلاب اسلامی باشد نمی چه راقی که به خانه رواز بر مسجد حرام منو مهل کی گفته؟ ابو عبدالله اثبات کرد که تو بر دین از زن و بچه و مال و خونه با همه دعا رو نداره عبا عبا و همه دار نداری ندارت رگ تو به خون دوای عرفه ابو عبد الله از پره مینیش صحبت میکنه لوان مبارکش صحبت میکنه از دنده هاش صحبت میکنه تمام هر اون که در روح خدا داد یه اعضای هم سلوس مینام در روح خدا یهو زر و مثلا موزخف اینو اینو دینی و علمی نداره ما بله عرض کردم منافع ملیه اگه در راستای انقلاب اسلامی بود ایران باید قدرت نظامی باشد وعدل لهم مسته تعتم قوه باید قدرت برتر علمی باشد در. باید علم رو صادر کنید بله جوانای پاکار پر انرژی مدیران در طراز جمهوری اسلامی مدیران در طراز, انق... مدیران در طراز انقلاب اسلامی خب نه فقط جمهوری اسلامی مدیران در طراز انقلاب اسلامی که این مدیران ما وقت صحبت میکنن مصری ها بگن آخ رئیس جمهور ایران صحبت میکنه چی میخواد بگه وزیر دفاع جمهوری اسلامی خواهد صحبت کنه اون لبنانیه بگیم چی میگه ما انا در مورد خود رهبری رو داریم ایشون وقتی فرمایشی دارن چیلی پیشون بولوتوست بهره بره لبنان المنار پخش زنده آقا داره در مورد مزار داخلی کشور خودم بارنا تو المنار دیدم مساله داخل ایران دارم صحبت میکنم این وزیر نویس عربی میشه از سید القائد امام خامنه ای دو نقطه تون تو وزیر نویسم توزی میشالا برای که داره ترجمه همزمان میکنه خب این یعنی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی که توش شیعه و سنی تعریف میشن همونطور که حماس تعریف شده اما تو نگاه این سلفی ها اینم چیز میخواد تعریفش تو نگاه ترکیه اصلا دین وجود داره تا تامل کنم با همین یک جمله تقویت جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه انقلاب اسلامی از شروط ظهوره این بیداری اسلامی از نشانه های ظهوره این اصله نه حالا این آدم اینه امون آدم اونه حالا ممکنه این نباشه کما که تو تاریخ بارها اثبات شده نبود شکرم از شکرم اینشالله برمانی بعدیمون پس از مرگ ملک عبدالله به رسی وقایب اینشالله من توی مشهد بودم یه هتل این عربستانی اومده بودن برای زیارت گفتم از کجا هستی گفتم حالا قتیف بعد بهش اون موقع این ملک بین سلطان این بود سلطان نلدزی به درک واسات شده بود و انقدر اونجا پلیسی من تو داخل آسانسور به که از این بورین سعودی ها حالا شیعه بود گفتم که این خدمت یذهب سلطان الی جهنم گفتم این رفت جهنم الله عربی دست بشو کسی خودمون ای خود این بانوخ دین درو را که تاسیده بود و فلان چه بخ... لب خنزیر میگفت ان شاء من اگه عبدالله بمیره یعنی همه منتظره انشالله ما که آرزه اون هستی به خاطر اینکه یک ظالم هست میشه و اصلا خودم که این از همون نشانه های زور باشه اینکه ما که ظهور رو میخواییم با خواهش, خواهش میدم برنامه بعدی در خدمت انشالله